حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردای یه روز بهتر علا کبادارت چون بلدی بخندی با چشم دل ببازید با اش دل ببندید ازوا که دلم سبزه پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا اجوا که سبز سبزه پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام به همگی من فرشید منافی اینجا رادیو پس فردا آخرین برنامه این هفته بروبریم. خوش این سلامتی این چه خبره امروز دیگه هاشیه هاشی موشه نمیریم وقت نداریم بدون فوت وقت میخوایم بریم سراغ برنامه امروز و به تبعیض بپردازیم امروز در آخرین روز از برنامه رادیو پاسورده که موضوع تبعیض میپردازیم میریم سراغ تبعیض در عالم سیاست بدونیم چطور میشه که اینطور میشه که پست و مقام حکومتی و نونو آبدار کلن پشت قباله تعداد آدم مشخصی خورده و چجوری میشه که توی دنیای سیاست انقدر همه چیز تب میزه به قول شاعر مگه گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟ مثلا سید حسن چکم از محمد یزدی دارد؟ چرا اکبر مارو حاشمی رفسنجانی صاحب اصلی رادیو پسوردار که چکای میلیونی میکشه واسمون رد صلاحیت کردن بر ریاست جمهوری مثلا؟ چرا خاطر ممنوع تصویر اون وقت شب و روز هفت تا کانال داره آملي لاريجاني نشون میده؟ اینا تبعیض نیست؟ این چیزا واقعا قلب آدمو به درد میاره. امروز ما میخوایم از این تبعیضا بگیم براتون. پس یک سلام مخصوص می کنیم همین اول برنامه خدمت همه اونش از 670 نفری که الان 30 چند ساله که از بزرگان نظام محسوب میشن و با ماشین زده گلوله و با دیگاردین ور اونور میرن، اونایی که الان 30 چند ساله فقط وقتی از روی صندلی مدیریت بلند میشن که برن بشینه روی صندلی ریاست و صندلی ریاست وقتی بلند میشن که شده باشن فرمانده کل فلان نیرو و از اونجا وقتی میان بیرون که شده باشن رئیس و مدیر و همکاره بهمان باشگاه و کلا خسته نمیشن اصلا و بازنشستگی و این چیزا هم کتشون نمیره خیلی مخلصیم واقعا خدا قوت خسته نباشین و برو بریم فرید جون فقط خواستملیران هم دیگه واسه مردم شهر تهران تبعیض کار میشه بچه پولدار باششه بالاا شی برف داریم و چه متوسط بشیم این ها یه بارونی بهت میدیم آ این اگر نه اینا برو خشداری آ این ها حالتون برای دیگه حالا هم جو به خشک و سد زندگی کن تبعیض دوممی که فقط پنج و دو تا به برنامت مونده و ما نمیتونیم کاری بکنیم آقا چرا؟ به <تصفيق> چرا؟ یکی <تصفيق> <تصفيق> ما حق انتخاب نداریم نه دیگه دوست داریم کدافس قربونت برم من فدات بشم خب چی کار کنیم تبعیض هست دیگه بالا شهر پایین شهری که میگن برای اتفاقا میفته یعنی دست ما نیست دست جغرافیاست این دست ما نیست واقعا دست ما نیست راجع به هوا ولی ما شنیدیم که دیشب برفی اومده حد حداقل تو تهران من شده هم که برف اومده و بروبچه های اصابی اشقال کردن و حالش بردن و و ضمن این که اصلا نتونستم بخوابن یعنی بروبچه های تهرون اصلا بیخوابی زده به سرشون بعدش هم همون سه چهار صبح یعنی از این برف زیاد و از تو برف بازی و اشقال و اینا رفتن به سمت کلپچ جای به هم خالی کنی ماشین در واسه من او چه کارم؟ ماشین آمار است که دیگه چمران نیمه توحید توی چینوت رفته. مربونت خودت باش دیگه یادگار امام رد کنی ترافیک تمومه. آره یهو یه از ذوق برف گازشو نگیریا. باز قبل همتم ترافیک ها اونجا دیگه با این برف نمیشه ماشینو جمع کرد. خیلی مراقب باشین کلب چم میزنین جای ما رو خالی کنین. نوش Yes. و اما خانم ها آقایون دختر خانم ها آقایون پسر دقت بفرمایید از اونچه که انتخابات مجلس خبرگان نزدیکه و یه ده نفوزی هم قراره بارد مجلس خبرگان بشن اینه که جناب آیت الله آمولی لاریجانی در جایگاه ریاست قوه قضایی احساس خطر کردن و در یک اقدام پیشگیرانه یک تنه قانون اساسی رو تغییر دادن و اعلام کردن که خبرگان اصلا حقی ندارن که بخوان نعوز و بالله نظارتی بر رهبری و دم و دستگاهش داشته باشن گوش بدیم الان ببینیم چ... چرا میخندین آقا دم و دستگاه رهبری که من میگم منظورم اون سازمان ها و نحات های زیر مجموعهشه دیگه هر چیزی که ما شوخی نمی کنیم که دم و دستگاه رهبری یه چیزی مشخصیه نخند فایل لاریجانی جانیو بذار گاهی دیده میشه که یه سخنهای بیپایه گفته میشه نسبت به نظارت بر و اخیرا من دیدم که بحث نظارت بر نهادهای زیر مجموعه و منصوبین رهبری او را اضافه کردن بله. واقعیت این هست که اینها یه آرزوهاییست که داره میکنن و ربطی به قانون اساسی نداره باله. اینها یه توقعاتی خودشون دارن میخوان توسعه بدن اختیاراتی رو و این نحوه فضاسازی های نادرست و غیر منطقی واقعا توجیه نداره در قانون اساسی ما نداریم نظارت بر رهبری بله نداریم یعنی اینقدر هم با اقتدار این فرمایشیو فرمودن یه ل از ما هم به شک انداختن که شاید اصلا همچین چیزی نبوده از اول تو قانون اساسی و خبرگان از اول مثلا تشکیل شده که مقام معظم رهبری رو فقط تشویق کنه و روحیه بده به معظم لهو اینا اینه که آقا ما رفتیم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو آوردیم، همجوری ورق زدیم رو زدیم تا رسیدیم به اصل عیزه بدیم عیزه بدین یه لحظه اصل 111 اینجاست اینا بذارین حالا اینجا جلومه دیگه براتون بخونم آقا اینو ما تو مدرسه هم خوندیم دیگه یعنی چون چرا یه چیزی میگه اصلا بر خودش اصل 111 قانون اساسی گوش کنیم هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد آقای آمولی در قانون اساسی ما نداریم نظارت بر رهبری. در قانون اساسی ما نداریم نظارت بر رهبری. خلاصا های لاریجانی از بیخ کلن منکر اصل 111 و قانون اساسی شدند و اگه دو بخوان زیادی بخوان روی این اصل منور بدن و اینا دیگه هیچ باید نیست اعلام بشه که این اصل از اول نفوذی بوده و مثلا آمریکا و اسرائیل و اینا با دستیسه لای بقیه اصول قانون اساسی اومدن چپوندن گذشتهش. اینه که دیگه به فرمايش آقای امالی لاریجانی رهبری از هفت دولت آزاده اینایی هم که کاندید خبرگان شدن نباید دوچار توهم نظارت بر عمل رهبری بشن و بدونن که تنها نهادی که میتونه به رهبری نظارت کنه اول خداست و بعد خود مقام معظم رهبری جان خالی تهران انقدر هوا خوبه الان جون میده نفس به بکشی قشنگ ریان پر بش از سر به خالی من که میگم یه عزیز. خبری هست و وگرنم مگه میشه در وارونگی آخه این همه که اصافت بره تو حلق ما ببین من و دوستان و هر کسی که میپرسم الان یه هفته از همه حالت تحوا داریم زردت هر روز دیگه خلاصه سرطانه رو گرفتیم فکر کنم. نه بابا خدानک. نگرفتیم ن... اون خوکی ولی مثل که جات خالی. بله ما چند روز پیش هم گفتیم که این هوای تهران اصلا وضعیت اختار اعلام کردن و حسابی آلوده است. اما خب این برف و بارون خصوصا برف دیشب و امروز تا حد زیادی آلودگی هوا رو تو شهرهای بزرگ به خصوص تو تهران کم کرده. امیدواریم که کمتر بشین آلودگی و شما به اون وضعیت دچار نشین امشب کم و بیش این بارندگی‌ها بیشتر تو مناطق شمالی ایران ادامه داره از فردا دیگه کم کم دیگه هوا باز میشه راستش حالا که داریم رو به سرما میریم میدونین سردترین هوایی که توی ایران ثبت شده مربوط به چه شهری و چه مقدار بوده الان میدون نصف ایران کلا نمیخیز شدن اسم شهرشونو بشنفن بابا شما که بچه کرجی دیگه چرا نمیخیز شدی خب داریم از سرمای منفی چهل درجه و این رو اینجوری و اینجوری چیزا صحبت میکنیم بشین شما یه دقیقه بگم ب... چه فایده بگم الان دعوا میشه من بگم سقز بوده همه بستان آبادی ها میگن نه خیر شهر مصطدر سرتر همدانی ها از اون ور شاکی میشن بابام جان اون سوزی که سرمایه همدان داره رو هیچ جای نداره زنجانی هم که زمستوناشون معروفه دیگه دیگه سنگ میگن می از سرما پیران ها و اردبیلیا و خلخال هم که ماشاءالله صاحب ثبت کرد دیگه توی روی سرمایه شهرشون دارن آقا اصلا چه کاریه؟ فقط همینو بدونیم که سردترین ترین این دمای ثبت شده توی ایران منفی چهل و سه درجه بوده حالا اینکه کجا بوده دیگه ما کاری نداریم اینشالله که شر شما بوده دنبالت میگرده چشمای من میدونی عشقت شده تموم دنیای من عاشق سادم میخوام که تو باشی و چوری بسته شدی امروز س شنبه 24 آذر ماه 1394 اونایک تکرار برنامه میشنون 4 شنبه 25 ام آذر ماه میشنون اونام که دانلود میکنن میشنون هر موقعی از سال ممکنه بشنون رادیو پاسوردم 949 میره سراغ تبعیز در سیاست تبعیز سازماندهی شده تعدادی سیاست از تبعیز آمده بیانیگه شماره 949 بدانید و آگاه باشید تنها جایی که تبعیز در آن کاملا کاملاً است عرصه سیاست است و اگر شما سیاست مداری را دیدید که مدعی بود اهل تبعیض نیست یا از آنهایی است که باید دو دستی او را بچسبید و یا از آن سیاست مدارهای ماس کننده خیلی داغانی است که معمولاً بشریت از دستان ها دو سه تا جنگ جهانی و 17 تا جنگ غیر جهانی را کشیده است و در هر صورت همه ما از دست سیاستمداران چشندگانیم امضا از روز اول تا همین الان از دست سیاست مداران دل خوندارنده های با دیدن تبعیض های سیاسی و به جان هم افتادن سیاست مداران لبخند های شیطانی زننده های رادیو هست فر دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا جون در مورد تقییز گفتی که تو خانواده اصولا بچه هایی کشیری رو بیشتر هوا ولی برعکس توی خانواده بزرگ من این مادر بزرگم، هوای دایی بزرگه رو که اون پسر بزرگه رو عجیب داشت ای سرگروه سالگان آره ریخته ام و حتی هر کلمه صحبت که غیر عقلانی بود فقط هر فمولو میگردم. این ما اطلاعم که سه نشست سال رفته باز هم همینه نمیدونم چرا من چرا تو ام باي؟ اول برام. بول چی بگیم دیگه آخر خارزمونه دیگه همه چی تو دو... دنیا زارم بر عایق شده. ممنون. بریم سراغ تبعیض در سیاست اون اوایلی که انقلاب شد قرار بود همه حتی گروه های غیر اسلامی هم برای ابراز عقیده آزاد باشن و هر گروه و سلیغهی بتونه آزادانه حرف خودشو بزنه و حزب خودشو داشته باشه هر هرچی که گذشت و انقلاب اون دستاندازه و جاده خاکیای اولیاش رو رد کرد و افتاد تو جاده کفی به که تحملش بره بالاتر کم حوصله تر و بد اخلاق تر شد و رسید به روزی که نه تنها گروه های غیر اسلامی که تا همین مسلمان‌ها هم عبر و زغیده و داشتن حزب و فعالیت سیاسی رو نداشتن حالا چی شد که اون سعه صدر و بزرگمنشی و تحمل نظر مخالف در اوایل انقلاب جای خودش رو داد به فتنه و نفوذ و معاند و رو ببند و اینجور چیزا چیزها فهمیدنش زیاد سخت نیست بلاخره تصور کنین وقتی خر انقلاب با اون حرفها و جستای خوشکل و روشن فکرانش از پل گذشته باشه سابخونه جدیدم جدید که خودشو مالک جدید ایران میدونه دلیلی نداره بخواد خیلی لیلی به لالای مستجرهای خودش بذاره ها؟ اینه که به مرور و کم کم اساس خیلیا رو ریختن تو کوچه و آورهشون کردن اونایی هم که موندن یا مجبور شدن زیب دهن و ببندن و سرشون به کار خودشون باشه یا تشبیه زندان آبخونک بخورن اینم سرنوشت عجیب و تب که آرمان های ادالت اول انقلاب بهش دوچار شد دارم فاستشن گفتی تبعیض گفتم یه خاطر از بچگی مرا تعریف کنم با کلاس دبستان که بودیم چون مذهبی بودیم سری دینی نمیرفتیم. تو بازی کردیم همیشه مادرم ساندویچ خیلی بزرگی برام درست میکرد می بچه ها سرم معونم به خودم هیچچی نمیرسه ولی اون روز بعد از که به دیدم هیچکی سروق ساندویچ من نیومد از یکی از دوستا پرسیدم چی شده؟ چرا هیچ که سراغ ساندویچ نمیگیره گفت معلم دینی گفته همه کسایی که مسلمون نیستن از بچه کی فکر کنیم ناجیز بودن عجب چیز خوبیه. باعث بویس میشه همه سنین شامل خودش به بچه بودیم دیگه پدر جهانم از تو باشیم قربانت قربونت برم پدر جهان یعنی واقعا حالا تو تو که خودت بچه بودی در نهایت هم خودت گفتی این قضیه به نفع و ساندویچ خودت خوردی ولی من تو کفش سطح شعور اون معلمی هستم که این حرفو به شاگرد داش زده به خود شعور گیجنیز از اینجور آدم بیشتره به خدا این چه حرفی میزنی آقا تو کلاس به بچه واقعا که این هفته از شما خواسته بودیم که از تجربیات تب بگین که سرتون اومده گفتیم مثلا به خاطر دین و مذهبی که داشتین نتونستین شغل دولتی پیدا کنین یا با رتبه کنکور سرعقمی نتونستین بین رشته مورد رو بخونین و جاتونو بچه های گرفتن یا چون زم بودین برای خیلی کارا و خیلی چیزا به دردسر افتادین مثلا مدیر دو تا شرکت بودین اما هنوز برای بیرون اومدن از کشور باید شوهرتون اجازه بهتون بده و خیلی چیزایی دیگه گفتیم که این هفته سرتون بزنین رو شونه ما خودتون رو سبک کنین هیچچیو تو دلتون نگه ندارین و همه این رفتارهای تبعیض‌آمیزی که تو زندگی بهتون تحمیل شده رو بریزین بیرون شما ریختین بیرون بعد جو تو همه کشور تبعیض وجود داره حالا خوب ایران بله. ایران درسته تبعیض سرقمه که همه چیز نبایی زیر سوال بارد به طور مثال اگه من از اول استخدام با همین لحن با اساس صحبت می کردم الان با 14 سال سابقه خدمتی و مدرک فوقلی ساز با همون پست اول استخدام که مشغول نبودم بله. مثل همکارم هم با 3 سال سابقه و تعهد منظری 10 ساله پست خوب داشتم بخشم کاری خود اما که نباید کردن تبعیض بذارم. او چرا گفت؟ حرفتون کاملا درسته. آفرین. شما اصلا با همین لر هر روزم به ما بزنیم و ما هر روز صداتونو پخش میکنیم چون مجبوریم. و این اصلا تبعیض نیست. بعد شما مگه چند سالتونه که 14 سال سابقه کاری دارین؟ ماشاءالله چشم کف با تو خیلی خوب موندی نا. لاقل صداتون که خوب مونده بود. حالا هم دیر نشده. میتونیم با رئیس‌تون صحبت کنیم. یاجيب ما تایید میکنیم کنی این کارا رو اصلا اصلا تو اینستاگرام هیراد گفته ما که تو ایران اول تبعیض بودیم بعد دست و پا در آوردیم کلا با تبعیض بزرگ شدیم الان ما رو ببرن یه جا که تبعیض نباشه میمیریم بله اینم نظر یک تبعیض دست و پا در آوردی به نام هیراد بود اینشالله تو هر محیطی که راحتی 100 سال زنده باشی اینشالله آپارتاید رو به چشم ببینی. دیگه؟ چی بگم دیگه؟ تبعیض دوست داره هی را ارز بحضورتون که پریا گفته تبعیض بازم تو اینستاگرام گفته تبعیض یعنی دین و مذهب تو کشوری که زندگی میکنی قبل از هر کاری ازت می‌پرسن مذهبت چیه بعد تازه ها شروع میشه حالا تو فکر کن حالا تو فکر کن تو ایران باشی و زنم باشی و مذهبت با اکثریت مذهب کشورت متفاوت باشه و زبانت زبان رسمی کشورت نباشه و همه اینا همش میشه تبعیض احتمالا اسمم تبعیض تبعیض‌زاده منفی هست خودم خبر ندارم بله مچاکرم ولی فکر کن کسی با شرایطی گفتی باشه یعنی زن باشه مذهبش هم شیعه نباشه در کنار همه اینا ایرانی هم نباشه و مثلا چه میدونم دیروز هم گفتیم مثلا از افغانستان اومده باشه ایران برای زندگی اون دیگه اسمش میشه تبعیض تبعیزی نژاد اصل تبعیزی متاسفانه البته ایمیل ما پسوردات اس ام اس مون 20420 60387 4150 و 20420 733595555 در فیسبوک گوگل پلاس ساوندکلاود اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برامون کامنت بذارید اپلیکیشن رادیو پاسوردا رو میتونید دانلود کنید اونایی که از اسمارت فون iOS استفاده میکنن و از اون طریق میتونید صدای ما رو بشنوید و یا صدای خودتون رو به گوش ما برسونید تلفن های پیامگیر ما دو سفت چار بیست و دو یازده بیست و که از داخل ایران تماس میگیرن دو سفت چار و بیست و شش و یک نو هر چی دلش خواست میگه من و تو با هم باشیم دنیا مال ماستی خدا اونجا سونگلا و سجف ماسکلا حالا تو گشتش میگه ما همین دیگه گوش کن به قلبت قلبت راست میگه هر چی دلش خواست میگه من و تو با هم باشیم دنیا مال ماستی اما خانم آقایون دختر خانم آقای پسرا جناب محسن رضایی دو شب پیش در یک گفتگویی در شبکه دو از سیاست عجیبی صحبت کردند که جمهوری اسلامی در مقابله با دشمنان خودش در پیش گرفته که ظاهرا تا امروز جواب هم داده و از این به بعد هم قرار با همین فرمون برن جلو اسم این سیاست کارآمد سیاست به گفته خودشون سیاست سیلی و خنده است یه چیزی مثل همون چماق و هویج بومی شده دیگه تبدیل شده به سیلی و خنده یعنی اون شپلاق اول میخاونی تو گوش طرف بعد میخندی اصلا بذار گوش کنیم به خودشون توضیح میدن دیگه ما الان روی یک مسیر خوبی افتادیم یعنی مسیر سیاست خارجی ایران بعد از 200 سال داره ریل خودشو پیدا میکنه من اسمشو گذاشتم سیلی و خنده ما در لانه جاسوسی هم با آمریکایا سیلی زدیم و هم جاسوسا رو بر اساس قوانین و مقررات خودمون تو مجلس شورای اسلامی اومدیم آزادیشون رو صادر کردیم و رفتند در جنگ به تجاوز صدام سیلی محکمی زدیم همه سرزمینامون رو آزاد کردیم و قندهای فرسانه داشت و پذیرفت باله. در برجام آها. در هسته‌ای یه سیلی محکم محکن زدیم 20 هزار درست کردیم غنی سازی رو درصد کردیم و بعد هم در مذاکرات نرمش قهرمانانه انجام دادیم بله آفرین خیلی هم عالی این سیاست سیلی و خنده اینجوری بود خلاصه های محسن رضایی توضیح دادم برای اینکه بهتر متوجه ابعاد این سیاست بشین ما به صورت صوتی هم براتون اجراش می‌کنیم. سامی جان یه سیلی خنده برو. آره یا اینجوری هم میشه یه مزه خلاصه این سیاست و آقای رضایی باید برن به اسم خودشون ثبت کنن که وارد دایره تول معارف اصلاحات سیاسی بشه البته قبلا هم از این سیاست استفاده شده ها. مثلا چه میدونم صدام وقتی رفت کویتو گرفت در سیلی زد به صورت غرب و بعد که غرب کشی کرد اومد صدامم قهرمانانه عقب نشینی کرد منتها بند خدا توی اون بخش خندش خیلی شانس نبرد دیگه من مطمئنم خود محسن رضایی هم بچه که بوده توی مدرسه از همین سیاست سیلی و خنده زیاد استفاده می‌کرد ناقلا یعنی می میشه سه تای کلاب با لوله خودکار ماش میزده پس یقی جلوی ها برایش اینجوری زبون در میابرده بعد زن که میخورده چهار تا نرگول بیرون مدرسه گیرش مینداختن نرمش قهرمانانشون نشون میداده مخلصم چاکره هم و اینا میکرده دیگه آره موسخان اینجوری بوده اگه از این تجربه های سیلی و خنده ای تو زندگی داریم برامون بگین شما هم دیگه پریورز غریب سلام چه خبر سلام سلام به همگی فرشید جان خبره امشب اگه اجازه بدی با یک گروگانگیری در والیبال شروع کنم او او. بگو چی شده؟ آره تو جنوب کشور تیم والیبال زاهدان که برای بازی با تیم اردکان یزد تو لیگ والیبال در این شرط تو هتل بوده بنوشته ورزش سه موقع ترک هتل ساعتی محبوس شده بودن بازیکنان این تیم به خاطر عدم پرداخت مخارج هتل به دلیل مشکلات مالی تیم بعدم عجب. کار به دخالت پلیس 110 میکشه و خلاصه وانته یکی از بازیکن‌ها رو به جای پول هتل توقیف کردن عجب. عجب وانت داشته یکی از بازیکن‌ها با وانته اومده بودن. با ماشین رفته بودن اونجا آها با ریخته بودن پشت وانته برفته بودن <تصفيق> ما از مدیریت هتل‌ها خواهش میکنیم همکاری بیشتر با تیمای ورزشی داشته باشن انقدر تو نخه مادیات نباشن دنیا دو, دو روزه بابا معنویات مهمتره آره, آره. آره. فرجی جان از جنوب بریم شمال بندر انزلی اگه اجازه بدیم برو بری اونجا چه خبره بوی سپید بگم آره که این روزا حال و روز خوشی نداره و افتان و نالان تو لیگ برتر جام خلیج فارس به زور خودشو ردیف به ام جدول نگه داشته به این صدای اعتراضیه هواداران ملوان عروس سکوا گوش بدیم بشنو پول نیست بازیکن نداره بازیکن باشه اگه پول باشه هنوز هیچ خبری الله چند هفته گذشت و هنوز هیچ خبری نیست بابا این ملوان این این همین رو میگفتن دیگه آره همینو رو میگفتن حرفشونم اینه که چرا تبیل بعد باشه بین قوی سپید با سایر تیمای متوپل چند هفته پیش چند ماه پیش از آغاز شروع لیگ مسئولان ملوان قول داده بودن وعده داده بودن که چند هفته دیگه فقط چند هفته مشکلات مالی حل میشه که هنوز مشکلات پابرجاست درسته اخه ب... من نمیدونم باز باز بحث مادیات شد دوباره ما از بازیکنان ملوان هم دیگه مجبوریم دوباره خواهش کنیم انقدر دنبال مادیات نباشن دیگه منویات باز مهمتره بازیکنان ملوان خب فری باز پرونده ورزش هفته رو با چه خبری می‌بندی والا شرمندم فرشی جان بازم باید از بیپولی و اینجور حرفا بگم امروز ای بابا. یه خبر دیگه بوده که چکای باشگاه پرسپولیس به خانواده مرحوم هادی نوروزی که برای حق و حق داده بودن به خانوادهش همه چکا برگشت خورده آخ... واقعا به زنده و مردم رحم ندارن این با اون همه تبلیغات یادت باشه اون جارو جنجال که خانواده نوروزی رو بله. نمایت میکنیم و اینجوری و اینجوری آخر چکا برگشت خورد عجب. من دیگه چی بگم من فقط به خانواده نوروزی هم فقط میتونم توصیه کنم که اینقدر دنبال مادیات نباشن معنویات واقعا مهمتره ماجی م... جان زدی تو کار معنویات نمیشد دیگه <تصفيق> خیلی حال معنوی پیدا کردیم امشب ممنونم از زاد فریبرز عزیز باد خدافظی می‌کنیم تا هفته‌ی آینده شنبه. مر متشکرم تا هفته بعد خود نگهدار با سلام بیسرکو سیه شب را ضمن استقبال از مخالفت سفرهای کشورهای اروپایی از طرح جدید کنگره آمریکا برای اعمال محدودیت های ویزایی با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماوی تشکیل اطلاف زد تروریسم با حضور 34 کشور مسلمان توسط عربستان و با حضور کشورهایی مثل پاکستان و قطر و گمانزنی ناظران برای تشکیل یک اعتلاف دیگر برای مهار خود این اعتلاف تازه تشکیل شده؟ انتقاد امام جمعه خمینی شهر از انتشار خبر شکافتن بخیگی چانه کودک خمینی شهری؟ و سوال ناظران از ایشان که آج این دکتره و پرستار فک و فامیلت بودن یا شما چیز خاصی زدی؟ و سقوط قیمت نفت به پایین ترین میزان آن در یازده سال گذشته و سؤال ناظران از مسئولین که واقع این جنس های داخل کشور چطوره گرون میکنین خب با همون روش نفتم گرون کنید دیگه سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل شدند اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بل, بل. سلام سازمان توسعه تجارت کشور بر بخشنامه جدیدی واردات 227 قلم کالا از آمریکا را ممنوع اعلام کرد بر اساس همین گزارش اقلام ممنوع شده شامل اجناسیشون سینمای خانگی نوار تصویری انواع مبل، انواع لامپ سیگار برگ توپ بدمینتون، میز بیلیارد، خمیر و دندان، کاغذ توالت، انواع نفربر، تانک و انواع پشتدری، فقد و درباشکن ای های میکروفون چلا اون کو نفر بر دستمال توالت و پوشتری چیکار میکرد اینو درسته به جون مادرم درسته بول. بول. این عین چیزایی که تو بخش نام اومده خب یعنی چی آخه اینو چه ربطی به هم دارن چه دیگه وای خب هم از دستمال توالت میشه برای این نفوذ استفاده کرد هم از تانک فقط این جاش فرق میکنه دیگه بخون بده دیگه جی نده تو معمول بوده باشه ادامه ی خبر طی ی سازمان توسعه تجارت واردات تمامی اقلامی که نامبرده شد از آمریکا به کشورمان ممنون می باشد. در این رابطه یکی از کارشناسان ضد نفوذ کشور ضمن تقدیر از این اقدام به موقع مسئولین از آنها خواست برای بردن اسم آمریکا هم در کشور مجازات مناسب قرار دهند، تا به زودی تمامی راه نفوذ شیطان بزرگ بسته شود پایان منشوه اخبار ای ولی همانطور که در خبرها آمده بود اخیران معاون دریابامنی مرزبانی نیروی انتظامی از جماوری چهار کیلومتر خط لوله انتقال سوخت قاچاقچیان خبر داد به همین دلیل همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر را به میناب محل کشف این لوله ها فرستادیم تا صحت و سقم این خبر را جوراب شود. همکار گرامی صدای بنده رو داری الو الو همکار گرامی بله بله بله, بله از بله. درون خلیج بله بله. همیشه یه فارس با شما صحبت بله. میکنم و صدای شما رو هم به خوبی دارم همکاره گرم همکاره گرم از درون خلیج فارس رفتی تو آب یعنی همکاره بله گرم بله همکاره باید برای کامل کرداری گذارشم وارده آب میشدم و الان با لباس قباسی در حال صحبت با شما هستم همکاره گرم ایوال واریکالله چرا اخی چی؟ ما برای اینکه عمق گرام این 4 کیلومتری لوله ها کار گذاشته بودند توی عمق دریا بود و من باید خودم از نزدیک اون رو می دیدم همکارا. یا خدا تو عمق دریا بود مگه همکارا گرامی یعنی چی اخ؟ بله دیگه به ظاهران اینا این لوله ها رو کار گذاشته بودند تا نفت رو به وسط واسطه‌ی دریا ببرن و از اونجا با شناور به مم. کشورهای دیگه قاچخ کنن هم کار گرامی یعنی اونجا یه سری آدم مدت ها کار کردن تو کف دریا لوله کار گذاشتن تا حالا هیچ چی نفهمیده بوده بله به نظر میاد اینجوری بوده دیگه هم کار گرامی با بی خیال هم کار گرامی جونت و همین براداره بودن اتمالا که این با. احمدی نجات میگفت سپاهی یا بسی جی جایی من اینا. چی بگم هم کار بل... همکار ارم اگه اجازه بدید بلی بلی. میگن چند تا کشبیه کالای قاچاق هم اینجا کش شده هر همی جیری شناکنم برم یه سر به اون بزنم بابا. اونجا همه چی در حال قاچاق شدنه که همکار کلا گردم به پای وقت خودت قاچاق نکنن اون وقت وقتی خدا نگهدار بله باب تشکر از توجه شما تپش و برنامه دیگر و قاچاقی دیگه خدا نگهدار کسی solution حل اله این پسراله فرستاده میشافت اونجا یه گزارش دیگه کنه البته فکر کنم های اون منطقه هم قاچاق کردن یه چیزی میتون ولی الو امकारे خوبی یعنی بهش را میگویند راه به مسیر دفن کوسه نمیپدی بهنگوم شنمسلی دستفان چلو نمیپدی به, به مسیر دفن کوسه نمیپدی گفتم به تو هر فای دل عاشق ما که نگفتی. نا خدا فرشید و کل تیم پنس فردا سلام علیکم آخه فرشید ما چه تیزمه تری ما به شما فروختیم چی شده ترتقالی و بعد بیران میگی نه چ... خدایش من آخه یعنی چ... فکی رو بودی حالاسه با ما به هزین باش که با خمدانی فرشید فرشیدجان. آ دیگه هم که همه رو مریض کردید ممنون. خلاصه‌ پرتقال بخورید، سوپ بخورید و موقع خودتون باشید و میخوان هر چه زودتر خوب بشید. دوستتون دارم. روز هستم از طرفتون. خیلی ممنونم. من شکر خدا الهیم خیلی بهتره. منتظر آره دیگه من حمر مریض کردم دیگه بقیه افتادن. ا بود که از دستم برمیومد ما مشکلی والا شخصا با ها نداریم ما فقط دردها و زخم‌های جامعه رو اینجا متمرکز می‌کنیم اینا فریادهایی در گلو خفه شده است خانم اینا به خاطر عشق اون قاهر بزرگی و آه اون برادر وسطی است ای ها از سرنوشته یوسف ابرد بگیریم برادر بزرگترش بردن انداختنش تو چا بس که عزیز این دور پدرش بود بله اما داریم از تبعیز در سیاست امروز حرف میزنیم جای دیگه ای که تبعیض خیلی تو سیاست پر رنگ نمایان میشه توی رسانه هاست حالا این رسانه میخواد اینترنت باشه روزنامه باشه رادیو تلویزیون باشه یا هر چیز دیگه ای. مثلا توی همین اینترنت چند وقت این موج روحانی متچکری را افتاده بود یعنی روحانی آب میخورد ملت هشتگ می‌زدن روحانی متچکر راه می‌رفت روحانی متچکری حرف میزد روحانی متچکر دلار ارزان می‌شد روحانی متچکر گرون می‌شد روحانی متچکر انقدر متچکری متچکریم کردن تشکر دون روحانی کلا پر شد الان به تشکر هیچ احساسی ندارن. خب این تبعیض دیگه که ما بیایم از کوچکترین خطاهای یه رئیس جمهور نگذریم و اصولا هیچ نقطه مثبتی تو پرونده‌اش نبینیم بعد مثلا رئیس جمهور منتخب خودمون رو بزنیم رو سرمون حلوا حلوا کنیم دیگه از رادیو تلویزیون و رسانه ملی نگو که الحق لقب رسانه ملی اونم به اندازه خیلی برازندشه یعنی اخبارو آقا یه جوری گزینش میکنن گاهی تغییر میدن پخش میکنن آدما میکنه خود شخص معظمله‌ نوشته براتون فرستاده علت بگم، علت بگم هنوز به قابلیت های تلویزیون ملی کره شمالی نرسیدیم ما آره حواستون باشه چون اونا تو این زمین خیلی جلوتر از ما چه جوری؟ مثلا میگن توی اخبار رسمی تلویزیون کره شمالی میگن اینجوری میگن گفتن تیم ملی فوتبال کره شمالی قهرمان جهان شده بعد مردم کره شمالی هم ریختن تو خیابون شادی و جشن و اینا. در این حد. واسه همین میگم کلن اونا به همون نسبت که توی انرژی هسته ای از ما توی جهت دادن به اخبارم یه نمه جلوترن ولی خب مشکلی نیست ببینید بچه های صدا و سیمای ما تلاش کنن بهشون میرسن به امید خدا یه ذره یه تلاششون رو بیشتر کنن حل ایشالله نگرانی ما از آدمی آدمیست که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشن حامران ملکمتی سلام چه خبرها؟ سلام فرجیان سلام همگی دو تا خبر جنجالی دارم امشب یک گفتگوی افکار پورمحمدی معاونت سیماس که امروز رسما اعلام کرده از این به بعد تلویزیون با هنرمندایی که با شبکه‌های ماهواره‌ای مخصوصاً منائض معاند همکاری کنن یا مساعد کنن قطع همکاری می‌کنه البته دیروزم توی وزارت ارشاد هم چه صحبتی شد آقای نوش‌آبادی همین مسئله رو مطرح کرد چی بوده ماجرا که حالا هر دو نهاد انقدر دستپاچه اعلامیه دادن اون ماجرا برمیگرده به اعلام حضور بغمن مفید و مانی کسراییان چکامه چمنما و طرف طاهریان تو سریالی که به‌زودی قرار است شبکه جم پخش بشه زمین لاهموار آره اینجوری هم خواستم بگم هر کی دیگه بره دیگه رفته دیگه دیگه برنگرده خب ماجرای دوم چیه برنگرده گفتی دو تا خبر جنجالی داد آره هم هفته پیش راجع به اکران فیلم مستند صحبت کردم من ناصر حجازی هستم امروز خبر اومده بود نمایش فیلم تا اطلاع ثانوی لغو شده ای بابا این دیگه چرا نکن ناصر حجازی هم ممنوع تصویر شده اون که نه، دلیل داشتشون برمیومد میکردن نه اما قوه قضاییه به خاطر شکایت امیر قلنویی فیلم توقیف کرده وکیل قلنویی ادار کرده تو فیلم قلنویی لقب خائم به ناصر حجازی داده شده برای همین بعد جلوی فیلم گرفته میشده عجب بسیار ممنونم ازت کامران عزیز بریم تیتراژ فیلم من ناصر حجازی هستم رو بشنویم با صدای رضا یزدانی با تو هم خدافظی میکنیم تا هفته آینده شنبه تا شنبه خدا میگردم جاده کلاخا پری بون و بس شهر غده کلاخا پری هیچ کس آخر این قصه رو نشنین هیچ کس آخر این قصه رو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 که میکنن. بحث و گفتگو پیرامون وجوه نورانی و کرامات مخفول مانده مقام معظم رهبری در جهت تصویت و تقویت پاویه های نظام و انجام سخندامی و شرکت در مراسب مختلف و تبیین جایگاه منحصر به فرد ولی فقیه در نظام اسلامی برای عموم مردم نداریم نظارت از کلیه علاقمندان به ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان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 علیک هم والان نداارتیم به واقع که بر اس اخبار رسیده ما نمیدانیم مقام معدم رهبری چرا حداقل یک ماه ضای عمومی اعلام نمیکنن در سطح کره زمین بله اون معامنی که گوشه مجلس نشسته حتما الان از خودش می کرسه که حاج داره از چه حرف میدنه؟ مگه چه ادضاییه که باید اعلام بشه؟ جونم برای تن بگه اعضایی که الان مادران به میبریم بزرگترین اعضای تاریخ وقتی که مقام معظم رحمری مورد تهدید واقع میشه وقتی که جایگاه ولایت مورد تهدید واقع میشه دیگه جایی برای شادی باقی میبان همه ماجرا این ها مگه این مملکت همین جوری وله که کفار بیان توش لفوت کنن وقتی که حضرت آیت الله لاری جانی در صحرای قوه قضایی وارد شد و دید آنه شیخ کافر پست فروش رفزنجانی با آنه که دیگر شیخ قطاب فروش یزدی آنه رفزنجانی با خود نشسته رهبر فروش گفته باید بعد از مقام معظم رهبری باید رهبری به صورت شرائی بشه خب مگه با این حرفا دیگه مومن میتونه پا پس حضرت آیت الله لاریجانی خون جلوی چشمهاشو گرفت شمشی رو کشید بیرون اما مرو پرت کرد اون طرف. عبار و داد این طرف گفت معلومه که نمیشه اصلن هم نمیشه یکی گفت ندارته بر رهبری چی گفت اونی که اصلن نمیشه دیگه شما خودتون تصور کنید چه شهرای محشری شده <تصفيق> برادران اون مومنی که مجلس نشسته رو بگیرید و خیلی داره به خودش فشار میاره بخ... کار دست خودش نده تفضل تفضل بله میگفتم حضرت آیت الله لاری جانی شمشیرش رو توی غلبه شیخ پسته فروش برو کرد. اما این پست فروش ها مگه تمام میشن این یکی میره اون یکی میاد اون یکی میره این یکی میاد نگه نوهر رو کوتاه کنم یه وقت تلفات جانی ندیم اینجا خیلی عزیزان حساسی شدن چند تا دعا میکنم این مقام معدم رهبری ارواح طیبه پدر و مادر خاندان لاریجانی رو را که این همه قوه داشتن که این همه رئیس قوه تحویل مملکت دادن را خوشحال و شاد بفرما حضرت آیت الله لاریجانی تخت گاز داره میره که رهبر بشه گازش فرگاز بفرما اصلا برای اینکه این, این شرها همه جمع بشن عمر مقام معظم رهبری را تا یک پنجاه سال دیگه تمدید بفرما این پست فروش رفسنجانی و اون غطاب فروش یزدی را با آن فلانزای خوکیه فوقهاد محشور بفرما ترکیب فعلی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی است. متعالی بفرما آمین به همه این پست فروش ها و اون قطاب فروش ها همه بفرمان آه، آه. بس دیگه چقدر دعا بکنیم دیگه وشلام علیکم و درود بر ما که این هنجره طلاعی من همیشه در بین پیرووان چند تا کشته و زخمی جا روح منی حاجی جو بچه جنی اون پنجره رو به ایی بابا با من های ه با بادش میشه منای بیست وسه ای بابارش هم از مانور عین خودت داری می لرزیم با خدا اوف بچه پنجره رو به من پش ببند ببنداقا ببند پنجره روز یخ کردیم ماام اینجا یخ کردیم به خدا. اما این روزنامه های جناه محافظه کار و تندروی کشور ما خیلی ناغلا بامزدن اون زمان که محمد خاتمی رئیس جمهور بود کلن کالیبره بودن روی مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم کلن یه تیتر درمیون در میون فقر و بیچارگی مردم و ناتوانی دولت بود بعد که ستاره ای از آسمان بدرخشید و ماه مجلسشون شد یعنی اوس شد رئیس جمهور زاینن مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم خود به خود هم همینجوری دلهپی حل شد و بیکاریش هشت سالی شما هر کیهان و باقی این عزیزان و ورق می‌زدید کلمه‌ی اقتصاد رو هم به زور می‌دیدید خود کلمه اقتصاد رو به زور می‌دیدید چه برسه به مشکلات اقتصادی الان هم که دولت شیخ حسن روحانی روی کاره برای این عزیزان اصلا خب جذابیتی نداره دوباره شما این نگاه کن یک درمیون تیتر در, در بوری مشکلات اقتصادی و دوباره نگران فقر مردم و گرسنگی و بی‌لباس موندنشون شدن البته روزنامه‌های جناح اصلاح طلب و میان رو هم توی تبعیض گذاشتن دسته کمی ندارن مونتا نه این که همیشه هی به شکل میزی همین هی تحتیلشون میکنن اصلا نمیرازن که تبعیز گذاری سازماندهی شده مثل اونوریا به نمایش بذارن خلاص این جوریه دیگه لازم باشه به صرف شما به راحتی میتونی جوری تبعیض بذاری تو کار رسانه‌ای که شب بشه روز روز بشه شب خیلی راحت خانما در دنیای سیاست انقدر کم رنگ رو به بیرنگیم که دیگه از تبعیض گذشته یعنی میشه اصلا گفت دنیای سیاست در ایران مال آقایونه خانما وارد این بحث نباید بشن کلا که انتظار مساوات هم داشته باشن از هستن کسایی مثل اعظم خانم طالقانی که هر بار انتخابات ریاست جمهوری باشه ثبت نام میکنن هر بارم به دلیل عبارت رجل سیاسی که از شروط اولیه پذیرش کاندیداتوری رد میشن یا مثل فائزه هاشمی که از این مر احضارش میکنن دادگاه از اون ور تو نمایشگاه مطبوعات جلسه پرسش پاسخ میذارن شرکت میکنه سوالم که میکنن ازش در مورد اینکه چرا از فتنه گرا حمایت میکنین میگه به نظر من فتنه دوکونه یعنی گروهی از بیان فتنه از برخورد با فتنه, فتنه در کار نبوده یعنی سمارت همین دو نفر رو دیده باشن آقایون سیاستمدار ایران حق دارن به ترسن خانما حضور داشته باشن تو عرصه سیاست حالا باز خوب از دستشون در یه معصومه ابتکار هست دستگاه های دولتی اونم البته رئیس سازمان حفاظت از محیط زیسته که خیلی در مورد اوضاع سیاسی ازخار نظر نکنه اینه دیگه اوضاع تبعیض در عرصه سیاست کشور در دست مردان فرصت امشبمون هم, هم تمام. مولانا حسرت های عاشقانش و چقدر زیبا بیان میکنه وقتی که میگه این عشق جمله عاقل و بیدار میکشد. بیتیغ میبرد سر و بیدار میکشد. مهمان او شدیم که مهمان همی خورد یار کسی شدیم که او یار میکشد. چون یوسفی بدید چو گورگان همی درد چون مؤمنی بدید چو کفار میکشد ما دل نهادیم ایم که دلداری کند یا گر کشد به رحم و به هنجار میکشد شبتون خوش به یادتم اگر اگرچه زود رفتی اگرچه بی تفاوت به هرچه بود رفتی به یادتم تم هنوزد اگر چه پر کشیدی اگر چه به آره زود رسیدی به آره زود منو همین کست؟ به هم علاق داری که سالی یا به درد هم دوچاری خودت که دیگه نیستی نبایدم بدونی عذاب غیر از اینی